صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا دلم ز سومه بگرفت و خرقه سالوز کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا چه نسبت است به رندی سلاح و تغوارا سماع وعز کجا نغمه رباب کجا ز روی دوست دل دشمنان چه در یابد چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا چو که لبینش ما خاک آستان شماست کجا رویم بفرما از این جناب کجا مبین به سیب زنختان که چاپ در راه است؟ کجا همین رویه دل بدین شتاب کجا بشد که یاد خوشش باد روزگار و سال خودان کرشم کجا رفت و آن اتاب کجا قرار خواب ز حافظ تمام داره دوست قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا